صفحه سی و سه بخش سوم رویارویی شمشیر جادویی با شمشیرهای سرزمین پریان هنگامی که آلوریک وارد جنگل جادویی شد نور سرزمین پریان کمتر یا بیشتر نشد و دید که این نور از سوی هیچ از پرتوهای تابان که بر دشتهایی که میشناسیم نمیآید مگر شاید از جانب روشنایی‌های سرگردانی از لحظه های شگفتنگیز که گاهی دشتهای ما را مبهوت میکند و در دم محو میشود و با گونه ای جادویی لحظه ای بر مرزهای سرزمین پریان افشانده شده است ردیفی از درختان کاج که پیچکها تا بالای شاخ و برگهای فرو افتاده تیرهشان پیچیده بودند چون نگاه بانانی بر حاشیه جنگل ایستاده بودند برجهای نقره ای میدرخشیدند گویی آنان بودند که تمام درخشش نیلگونی را که سرزمین پریان در آن شناور بود پدید آورده بودند و آلوریک که اکنون در سرزمین پریان بسیار پیش رفته و اکنون در برابر کاخ بزرگ آن بود و میدانست سرزمین پریان از رازهای خود به خوبی نگهداری میکند پیش از اینکه وارد جنگل شود شمشیر پدرش را بیرون کشید شمشیر جادویی هنوز در غلاف نوع خود از شانه چپش بر پشتش آویخته بود و لحظه ای که از کنار یکی از آن درختان کاج نگهبان گذشت پیچکی که بران میزیست ریشههایش را شل کرد و با سرعت خود را رها کرد و راست به سوی آلبریک آمد و به دور گلویش پیچید شمشیر بلند و باریک پدرش درست به هنگام بیرون آمده بود اگر آن را بیرون نکشیده بود دیگر نمی آن را بیرون بکشد چون حمله پیچک بسیار ناگهانی بود. ریشه به ریشه پیچک را که همچون پیچیدنش به دور برجهای کوهن به اندامهایش چنگ زده بود برید و باز ریشه‌های بیشتری به سراغش آمدند تا اینکه که ساقه اصلی آن را بین خودش و درخت برید. و پس از آن صدای هیس هیسی از پشت سرش شنید پیچک دیگری از درخت دیگری پایین آمده بود و با برگهای گشوده به سوی او حجوم آورده بود آن موجود سبز وحشی و خشمگین می نمود و هنگامی که به شانه چپش چنگ انداخت گویی تصمیم نداشت هرگز رهایش کند اما آلوریک آن ریشه ها را هم با یک ضربه شمشیر برید و سپس با بقیه پیچک ها جنگید پیچک نخوست هنوز زنده بود اما کوتاهتر از آن بود که به او دستیابد و شاخه هایش را خشمگینانه بر زمین می کشید آلوریک خیلی زود پس از خروج از بخت حمله اول خودش را از ریشه هایی که به او چنگ انداخته بودند رها کرد به عقب رفت و پیچک دیگر نتوانست به او دست یابد اما آلوریک هنوز میتوانست با شمشیر بلندش با او بجنگد سپس پیچک خود را عقب کشید تا آلوریک را فریب دهد و هنگامی که آلوریک به دنبالش رفت بر روی او پرید اما هرچند چنگال پیچک بسیار ترسناک است شمشیر هم بسیار تیز بود و آلوریک هرچند گیت شده بود خیلی زود بر دشمنش غلبه کرد و پیچک دوباره به بالای درختش رفت. سپس به عقب گام برداشت و در پرتو تجربه نوینش به جنگل نگریست تا راهی برگزیند. ناگهان در میان صد درختان کاج دید که پیچک‌های دو درخت روبرویش در هنگام نبرد چنان کوتاه شدهاند که اگر درست از وسط آن دو بگذرد هیچ کدام از آن دو پیچک نمی توانند به او دست یابند. سپس به جلو گام برداشت، اما متوجه شد یکی از درختان کاج به آن دیگری نزدیکتر می شود و دریافت هنگام بیرون کشیدن شمشیر جادویی فرار رسیده است. بنابراین شمشیر پدرش را در غلاف کمرش فرو کرد و شمشیر آویخت شانه اش را بیرون کشید و راست به سوی درختی رفت که جابجا جا شده بود. و تا پیچک به سوی او پرید، ضربه‌ای به او زد و پیچک دردم نبیجان که همچون تودهای از پیچکهای معمولی بر زمین افتاد، سپس ضربه‌ای به تنه درخت زد و تراشه‌ای کوچک بیرون پرید، تمام درخت لرزید و ناگهان تصویر شومش از میان رفت و همانند درخت معمولی جادو نشده ای بر جای ایستاد. سپس با شمشیر کشیده به درون جنگل گام گذاشت. چندان پیش نرفته بود که صدایی همچون بادی ضعیف وزان در میان درختان شنیده شد. اما هیچ بادی در جنگل نمی وزید. رویش را برگرداند و دید درختان کاج به دنبالش می آیند. آهسته به دنبالش می آمدند و خود را از مسیر شمشیرش به دور نگاه می داشتند. اما از راست و چپ به او نزدیک می شدند. آلوریک دریافت که بدین ترتیب به زودی در هلالی که دم به دم گسترده در میشد به دام میافتد و به زودی در میان آنها له می شود و میمیرد. نیز دریافت که برگشتن به عقب مرگآور است و تصمیم گرفت راست به پیش برود و تنها به سرعتش تکیه کند چون ادراک سریعش متوجه ای آهستگی در جادویی که در جنگل موج میزد شده بود گویی کسی که آن را تحت اختیار داشت پیر یا از جادو فرسوده بود یا حواسش به چیز دیگری بود؟ این راست به پیش رفت و با شمشیر جادویی به هر درختی که سر راهش بود جادو شده یا نشده زرب ای زد و افسونهایی که از آن سوی خورشید در آن فلز جریان داشتند نیرومندتر تر از هر تلسمی در آن جنگل بودند؟ درختان عظیم بلوت با تنه شومشان با یک ضربه آن شمشیر جادویی تمام جادویشان را از دست می دادند، آلوریک تونتر از آن کاجهای زشت به پیش می رفت و خیلی زود در آن جنگل جادویی و ترسناک به گروهی از درختان رسید که جادو نشده بودند و بدون نشانه از جادو یا حتی راز بر جایی ایستاده بودند، و ناگهان از تاریکی جنگل بار دیگر به درخشش زموردین سبززارهای شاه پریان رسید. از این درخشش نیز نشانه هایی در اینجا داریم؟ سبززارها را تصور کنید که تازه از میان شب بیرون می آیند و انگاه که ستارگان همه رفته اند. زود هنگام را در قطرهای جالهشان باز می تابانند و در حاشیه آنها، است که اندک اندک رنگهای ملایمشان را بار دیگر پدیدار می کنند سبززارهایی که با هیچ پای جز باریکترین و بخشیترین پاها آزرده نشده اند و توسط درختانی که تاریکی هنوز در ساقه هاشان هست از باد و تمام دنیا در امانند اینها را در انتظار آواز پرندگان تصور کنید در انجا گاهی کم و بیش نشانی از درخشش سبززارهای سرزمین پریان وجود دارد اما چنان توند دگرگون می شود که هرگز نمیتوانیم مطمئن باشیم نور قطرات جاله و میشی که این سبززارها در آنها میدرخشیدند و میتابیدند زیباتر از آن بود که شگفتی ما میتواند حدس بزند زیباتر از آن بود که قلب هرگز امیدش را داشته و چیز دیگری هم داریم که نشانی از آنها بدهد آن جلبکها یا خزه های دریایی که مدیترانه ای را فرش می کنند و از درون آب آبی سبز برای تماشاگران بر فراز سخرها می درخشند این سبززارها بیشتر شبیه کف دریا بودند تا هر سبززار ما چرا که آسمان سرزمین پریان جرف و آبی است آلوریک به زیبایی این چمنزار خیره مانده بود، چمنزار در میان گرگومیش و جاله می درخشید و در برابر جنگل شبگون جادویی با شکوه سرخ و بنفش انبوه گلهای سرزمین پریان که غروبهای ما در کنارشان کمرنگ می شوند و ارکیده میپژمرند مان شده بود. هنگامی که آلوریک از جنگل بیرون رفت، کاخی در برابرش می درخشید که تنها در ترانهها میتوان از آن گفت کاخی با دروازه های درخشان و گشوده به سوی سبززار با پنجره هایی آبی تر از آسمان ما در شبهای تابستانی گویی ساخته شده با نور ستارگان آلوریک شمشیر در دست بر هاشی جنگل ایستاده بود و به سختی نفس می کشید. و بر فراز سبززارها به بالاترین شکوه سرزمین پریان می نگریست که ناگهان دختر شاه پریان از یکی از آن دروازه ها بیرون آمد با درخششی خیره کننده بدون اینکه آلودیک را ببیند به سوی سبززارها آمد پاهایش به جاله ها و هوای سنگین ساییده می شدند و دمی سبزه زم رودین را که در زیر پایش خم شدند و باز کمر راست می کردند می همان همانگونه که در تپه سپید ما استکانی های ما با نشستن و برخاستن پروانههای آبی بر رویشان خم و راست می شبند. و هنگامی که شاه دخت می نه نفس کشید و نه تکان خورد حتی اگر آن کاچها هنوز هم دنبالش می کردند، نمی بخورد، اما کاچها در جنگل مانده بودند و شهامت نزدیک شدن به آن سبززارها را نداشتند. دختر تاجی بر سر داشت که گویی از یاقوت کبود تراشیده شده بود، دختر همچون سپیده دمی که از میان شبی بلند در سیاره این از سیاره ما به فرا می رسد، بر آن سبززارها و باغها می درخشید. و هنگامی که از نزدیک آلوریک می ناگهان سرش را برگرداند و چشمهایش با شگفتی اندکی گشوده شدند او هرگز مردی را از دشتهایی که می شناسیم ندیده بود و آلوریک خاموش و ناتوان به چشمهای او خیره شد البته خود شاهدخت لیرازل بود در اوج زیبایی و سپس دید تاجش از یاقوت کبود نیست که از یخ است تو کی هستی؟ و صدایش آهنگی داشت که در میان چیزهای زمینی بیشتر از همه شبیه موسیقی برخورد هزاران تک یخ با باد بهاری در دریاچه های کشوری شمالی بود و آلوریک گفت من از دشت هایی میآیم که بر روی نقشه وجود دارند و شناخته شده اند و سپس لیرازل آهی برای آن دشتها کشید چرا که درباره گذر زیبایی زندگی در آنجا و اینکه چگونه در آن دشتها همواره نسل جوانی وجود دارند شنیده بود و به تغییر فصل و کودکان و سن اندیشیده بود که خونیاگران سرزمین پریان به هنگام سخنگفتن از زمین از آنها خوانده بودند و هنگامی که آلوریک آه او را برای دشتهایی که میشناسیم دید کمی درباره سرزمینی که از آن آمده بود برایش گفت و او بیشتر پرسید و دمی بعد در حال گفتن داستانهایی درباره خانه و در ارل برای دختر بود و دختر از شنیدن آن سخنان شگفت زده شد و پرسش‌های بسیار دیگری کرد و سپس آلوریک هرچه را درباره زمین میدانست برای او گفت داستان زمین را بر اساس آنچه در سالهای زندگیش و با چشمهای خودش دیده بود نگفت بلکه داستان‌ها و افسانه‌هایی هایی درباره جانوران و انسان‌ها گفت که مردم ارل از درون اعصار بیرون کشیده بودند و پیرها در کنار آتش شامگاهی برای کودکان کنجکاو درباره آنچه در, آن در گذشته ها رخ داده بود میگفتند بدین ترتیب در هاشیه آن سبززار که درخشش معجز آسایش با گلهایی که هرگز نشناخت ایم در میان گرفته شده بود جایی که جنگل جادویی پشت سرشان بود و کاخی که تنها در ترانه میتوان از آن گفت در نزدیکیشان می درخشید از خرد ساده پیر مردان و پیرزنان از دروها و گل دادن گل سرخها و بهار، از هنگام کاشتن گل در باغها، از آن چه جانوران وحشی می‌دانستند، از چگونگی درمان، چگونگی دوختن، چگونگی کاهندود کردن بامها، و از این که کدام بادها، در کدام فصلها، بر دشتهایی که می شناسی می سخن گفتند و سپس سلح ظاهر شدند که از کاخ حفاظت می کردند تا مبادا کسی از درون جنگل جادویی بیاید آن چهار نفر که می درخشیدند جوشن برتن به سبززار آمدند چهرهشان دیده نمی شد. در تمام صدههای جادویی جادوی زندگیشان جرأت نکرده بودند رؤیای شاه را در سر بپرورانند هرگز هنگامی که مسلح در برابر اوزانو میزدند رویشان را نگشوده بودند اما با واژههایی مرگبار سوگند خورده بودند که نگذارند هیچ مرد دیگری اگر از میان جنگل جادویی بیاید با او سخن بگوید اکنون با این سوگند بر لبهاشان به سوی آلوریک گام بر می لیرازل با افسوس به آنان نگریست اما نمیتوانست جلوشان را بگیرد چرا که آنان به فرمان پدرش آمده بودند و نمیتوانست آن را تغییر دهد و خوب میدانست پدرش فرمانش را پس نمیگیرد چرا که این فرمان را زمانها پیش به امر سرنوشت بر زبان آورده بود؟ آلوریک به جوشنهاشان نگریست که درخشانتر از هر فلز ما مینمودند، گوی از یکی از برچ های قصری که تنها در ترانه ها از آن گفته شده است، بیرون آمده بودند. سپس شمشیر پدرش را بیرون کشید و به سوی آنان رفت چون میاندیشید با نوک تیز شمشیرش میتواند در یکی از بندهای جوشن آنان نفوذ کند. شمشیر دیگر در دست چپش بود. آلوریک در برابر حمله نخستین سلحشور، دفاع کرد و ضربه او را دفع کرد اما ناگهان برقی در بازویش پیچید و شمشیر از دستش افتاد و دانست که هیچ شمشیر زمینی نمیتواند با جنگ سرزمین پریان رویاروی کند و شمشیر جادویی را در دست راستش گرفت با این شمشیر حمله نگهبانان شاهدخت لیرازل را دفت کرد حمله را که این چهار سلح در تمام عصرهای سرزمین پریان منتظرش بودند و هیچ برقی از هیچ کدام از آن شمشیرها به سراغش نگامد تنها لرزشی همچون ترانهی از فلز شمشیر خودش گذشت و گونهی تابش از آن برخاست و به قلبش رسید و آن را تسلا داد اما هنگامی که آلوریک به دفاع در برابر حملات تند نگهبانان ادامه می داد شمشیری که خویشاوند آذخش بود از دفاع کردن خسته شد چرا که در جوهر خود سرعت و سفرهای سخت را داشت و در حالی که دست آلوریک را با خود بلند میکرد به سوی پریان سلحشور حمله برد و جوشنهای سرزمین پریان نتوانستند در برابرش مقاومت کنند. خونه غلیز و غریبی آغاز به فروریختن از میان بندهای جوشن کرد و خیلی زود، دو نفر از آن جمع درخشان به خاک افتادند و آلوریک که با غیرت شمشیدش به حیجان آمده بود دلاورانه جنگید و خیلی زود یک نفر دیگر را نیز از پای در آورد و بدین ترتیب تنها او و یکی از نگهبانها باز ماندند که گویی در پیرامونش جادوی نیرومندتر از همکاران برخاک افتاده اش داشت و چونین بود چون هنگامی که شاه پریان نگهبانان را جادو می کرد، این سرباز را پیش از دیگران، هنگامی که همه افسونهایش تازه بودند، جادو کرده بود و سرباز و جوشن و شمشیرش هنوز اندکی از این جادوی زود هنگام را در خود داشتند که نیرومندتر تر از هر تلقین جادوینی بود که بعدها از اندیشه اربابش بیرون آمده بود، اما همچنان که آلوریک به زودی با بازو و شمشیرش دریافت این سلحشور هیچیک از آن سجادوی اصلی را نداشت که جادوگر پیر به هنگام ساختن شمشیر بر فراز تپهش گفته بود چون این سجادو توسط خود شاه پریان ناگفته حفظ شده بودند تا از خودش حفاظت کند جادوگر برای آگاه شدن از وجود آنها می با جارویش به سرزمین پریان پرواز میکرد و تنها و در خفا با شاه پریان سخن میگفت و شمشیری که از دور دستها به دیدار زمین آمده بود چون فرود آمدن آزرخش بر حریف فرود می‌آمد و اخگرها از جوشن او و جرقه های سرخ از برخورد شمشیرها با یکدیگر برمیخواست و خونه غلیظ پریانه آهسته از میان چاکهای بزرگ بر جوشنش فرو میریخت. ریخت و لیرازل با وحشت و شگفتی و عشق می نگریست و جنگجویان در حال نبرد به میان جنگل کشیده شدند و شاخه های کند شده در هنگام نبردشان بر آنها فرو ریختند و افسونهای درون شمشیر سفر کرده آلوریک بر پری سلحشور فرو میریختند ریختند و می غریدند. تا این که آلبریک در تاریکی جنگل در میان شاخه های کند شده از درختان جادو نشده، با زربعی همچون حمله آزرخش بر یک درخت بلوت او را بر خاک انداخت. به دنبال آن صدای گوش خراش و سکوت بعدش لیرازل به کنار او دوید و گفت زود بگریز چون پدرم سه افسون داره، جرأت نکرد از آن افسون سخن بگوید،